بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بیاندازه مهربان نهایت بارحم ایرو پوش بر خود خودپیچیده برخیز و جهانیان را بیم بده و پروردگار خود را تعظیم کن و جامع های خود را پاکیزه ساز و از پلیدی بپرهیز و بر کس منت مگذار که چشمداشتی بیشتری از آنچه ای داشته باشی و برای پروردگاه رد شکیبایی کن رنگامی که در سور دمیده شود پس آن روز و روز دشوار است که بر کافران آسان نیست مرا و کسی را که آفریده ام تنها بگذار به او مال فراوان ارزانی کردم و پسران حاضر و آماده به او زندگی مرفع فراهم آوردم باز هم تعم دارد که بر آن بیافزایم. به هیچ صورت نه زیرا او به آیات ما بسیار معاند است بهزودی او را به مشقتهای جانکاه روبرو می سازم بگمان او اندیشید و قرار صادر کرد پس مرگ بر وی که چه قراری صادر کرد باز هم مرگ بر وی که چه قراری صادر کرد او بعدا نظری انداخت باز روی ترش کرد و چین بر جبین افغان بازو روی گردانید و تکبر ورزید و باز گفت این چیزی نیست جز جادویی که موثر می شود این چیزی جز کلام بشر نیست بزودی او را به دوزخ و چی چیز به تو فهماند که دوزخ چیست آتشیست که نه چیزی را باکی می گذارد و نه کسی را رحام می کند نابود کنین دیست برای بشر بر آن ده فرشته عذاب مقرر است و مؤکلان دو را جز فرشتگان نگماشتید و تعداد ایشان را صرف برای آزمایش کافران معین کرده اید تا اهل کتاب یقین حاصل کنند و ایمان مؤمنان تقویت شود و شک نزد اهل کتاب و مؤمنان باقی نماند و تا آنانی که در دل‌هایشان مرض است و کافران بگویند خداوند به این مثال چی اراده کرده است؟ به این ترتیب خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد ره یاب می گرداند شمار لشکریان پروردگارت را جز خود او هیچ کس نمی داند و این جز داری برای بشر نیست نخیر قسم به ماه و قسم به شب هنگامی که پایان یابد و قسم به صبح چون روشن شود بدون شک دوزخ یکی از اموری بزرگ است اختاری است برای بشر. برای هرکی از شما که بخواهد از حد اعتدال پیش برود یا از آن اعتب بماند کس در گرو اعمال خود است جزیاران دست راست که ایشان در باقهای یعنی بهشتند هشتند میپرسند از احوال مجرمان که چی چیز شما را به دوزخ در آورد؟ می گویند ما از نمازگذاران نبودیم و نبودیم به حالتی که مسکینی را تعام بدهیم و پیوسته هم نشین کسانی بودیم که با فکر از بین بردن حق بودند، و هموارا از روز جزا انکار این کار می تا اینکه که یقینی مرگ به سراغ ما آمد لذا امروز شفاعت هیچ شفاعتگری به ایشان مفید نمی شود پس چی شده ایشان را که از پند رو می گوی خران رم خورده اند که از شیر رم برداشتند در حقیقت هر یک از ایشان می برایش صحیفه های سرگوشاده داده شود نخیر بلکه ایشان از آخرت نمی ترسند. نخیر یقینا این قرآن پند است پس هر که بخواهد از آن پند می گیرد. و هیچ کس پن نمیگیرد جز آن که خدا بخواهد و اوست سزاوار تقوا و اهل آموزش